بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آلها الطاهرين هو العلم الثالث ثالث وحدانية الله تعالى وحدانية الله تعالى کسی آه خداوند متعال الف التوحيد الاصل الاول في اصول الدين اي شيء اصل اولی که در اصول دین هست چی بود توحید یعنی چی یعنی ان واحد یعنی احسان، یعنی الله تعالی احد تما نحن و نقرأ في سوره التوحيد المبارکه قل والله احد فالله تعال احد طيب انواع التوحيد للتوحيد انواع برای توحید گونه هایی است درست است الاول التوحيد الذاتي یعنی إن الله تعالى واحد، آحاد، بذاته. خدا متعال ذاتش یکو يكو؟ یکانس. يكو؟ آره، آره. درست؟ لا شریک له ولا لا نظیر. آره، آره. ولا شبیه له ولا لا مثیل. نه مثل داره، نه شبه داره، نه مانند داره، نه شریک داره، هیچ چیزی نداره ذاتش یک یک هست درست شد؟ بله آره. خب اگر به قرآن کریم هم مراجعه کنیم آیاتی که هست و هو سمع البصیر درسته؟ خوب، پس ذات خداوند یک و یگانه خدای دوم به ذات وجود ندارد. درسته؟ آره. دو التوحید الصفاتی. دقت کنید چی میگیم. توحید ذات در مورد خداوند یک نقطه‌ای که قابل لحاظ هست اینه که و ذات خداوند نباید کسی تفکر کنه که ذات خداوند چی گونه هست بر اساس روایاتی که وارد شده چرا؟ چون که آدمی گنجایش تحمل تفکر در ذات خداوند متعال را نداره وقتی تحملش را نتوانیس از هم میپاشه مثلا برای نمونه در این خانه اگه همه جایش را کر کنیم نه؟ که هیچ هوای قابل خارج شدن نباشه بعد از بیرون یک چه؟ پم به چیزه که هوا را پم کنه اینجا هوا وارد کنیم وارد کنیم تا جایی گنجایش داره که همونجا هست بعدش وقت از گنجایش اضافه شد حتما این خانه می دیگه نمی آدمی توانایی درک ذات الهی یا کنه ذات الهی رو نداره چون که تواناییش رو نداره در مورد ذات خداوند متعال لذا هر که در مورد ذات خداوند متعال تفکر کند و نمازون لحظه دیگه خوشدار است برایش که کارش خراب شده با. برست شد؟ آره. خراب میشه این یک با. نقطه خام؟ حالا ما برای ذهن ما خوب راحت بشم مسئله ذاتو زادو... و صفات اینا را یک کم در قالب مثال اگر چک کنیم گرچه برای خودمون احتمال نباید مثال زد منتها که ما شما بیفهمیم ببین ما شما انسانیم نه یعنی ذات ما ذات چیز انسانی است ذات ما ذات انسانی است شما دو تا چه نام داریم هیچ گاهه. نام اصلی چ بود هیچ گاهه به هشتم هیچ گاه زهرا معصومه نیست نمیشود، هیچ امکان نداره که بشه و هیچ گاه معصومه زهرا شده نمیتونه، اینا دو نفره، درست شد؟ یعنی از نظر ذاتی وقتی نگاه کنیم ذات انسانی دارن با هم اشتراک دارن ولی باس هم دو نفره، درست؟ خداوند متعال این گونه نیست که یعنی یک خدای دیگه باشه از جنس خدای متعال متعالا که با هم ارتباط ندارن نداشته باشه. این نیست خدای یکی یک است که دیگه هیچ نیست دیگه چیزی دیگه درسته؟ توحید ذاتی یعنی توحید ذاتی؟ بله توحید ذاتی التوحید صفاتی این اصاف الله تعالی عین ذاتیهی این اوصاف الله تعالی عین ذاته تعالی ببینن ما شما عالم و عالمه میشیم ام؟ برای آقایون میگه عالم برای خانوم ها میگه عالمه درست ولی آدم ها ذاتاً عالم و عالمه هست نه اول هیچیزه نمیدانه دیگه بعدا آهست آهسته میدانه ایچه. پس از این این پیداست که در ذات آدم علم نهفته شده نیست شد انسان ذاتاً عالم نیست بعداً عالم میشه آ آ ولی خداوند متعال که عالم ذاتاً عالم اینطوری نیست که اول خدا چه کسی چه بگیر؟ نعوذ بالله نادان باشه، بدن دانا شده باشه، این طوری نیست خداوند متعال علمش در ذاتش هست یعنی به این معنی که اگر علم را از خدا بگیریم دیگه ایش خدایی نیست اینی تمنی داره مثلا برای نمونه اگر امون روح یک نفر رو ازش بگیریم یعنی روح انسانی را رو از آدم بگیریم دیگه آدم هست نیست آره جیسنه زمان ببین تفاوتی که بین مرگ و زندگی هست خود مرگ هم یکی از مخلوقات خداوند متعاله همطور که زندگی از مخلوقات خداوند متعاله پس وقتی که یک نفر میمیره از بین نمیره بلکه در یک خلقت دیگه وارد شده درسته؟ ما فعلا اول نبودیم آره آمدیم در, خلق... در یک خلقتی به نام زندگی وارد شدیم در خلقتی به نام زندگی هستیم بعد از اینکه مردیم یک ای خلقت زندگی را رها میکنیم و نام خلقت مرد یا مردگی داریم سیپری میکنیم اینطوریست درست یا؟ آره. حالا خداوند متعال اوصافش عین ذاتش یعنی اینطوری نیست که بعداً بیاید بلکه در ذاتش هست اگر وصفش رو ازش بگیری اینه که ذاتش از بین رفته باشه. درست شد؟ خوب دقیق فهمیدم؟ آره. اوصاف الله تعالی ذات تعالی. این اوصاف الله تعالی قطعا اوصاف خداوند متعال عین ذاتی عین ذات خداوند متعال فن. درست شد؟ این قطعا قطعا اوصاف خداوند متعال عین ذاتش است مثلا برای اینا هم نگاه ببین اوصاف خداوند متعال عالم است قادر است درست واسع است هست. است هست. اگر, اگر بسیرت رو از خدا بگیریم دیگه ذات خدا از بین میره دقت کردیم عین ذاتش است بله عین ذاتش است اگر قدرت رو از خدا بگیریم ذات خدا از بین میره درست یعنی خدایی که قدرت نداشته باشه خدا نیست درست یا؟ راحت ترش این طوریست راحت ترش این خدایی که قدرت نداشته باشه ما ایچ قبول نداریم آره آره درست یا؟ آره بعد چی؟ التوحید الملکی التوحید الملكي، التوحيد الملكي یعنی چه؟ یعنی توحيد در مالكيت و دارايي. درسته؟ توحيد در مالكيت و دارايي. إن الله تعالى مالك المخلوقات مطلقا مالک المخلوقات مطلقاً چی فکر اینجا دقت میکنه ببین با کلمه ها دقت میکنه ما یک خلق داریم. یک, خالق داریم یک خالق داریم یک مخلوق داریم درست شد از او طرف یک وجود داریم یک موجود داریم خداوند متعال وجود داره یا نه بله ولی خداوند متعال موجود نیست <تصفيق> بی خدمت چی موجود یعنی چی؟ یعنی با وجود آورده شده نیست. بلکه ذاتش وجود هست. درست شد؟ ما و شما موجودیم. دقت میکنید ما و شما موجودیم یعنی مخلوقیم. یعنی خدا ما رو خلق کرده. اما خداوند متعال مخلوق نیست. نیست. بلکه خالق هست. ايه کلمات را علت این که می گفتیم از دوازده سال بالا باشه اینه که انرژی ها ممکن از پایین اگر باشه ذهنش نمی‌کشه ها بله خداوند متعال خداوند متعال مالک مطلق مخلوقات هست یعنی ان مالک المخلوقات مطلق معنی چیه بله خاتن ان الله تعالی قطعاً خداوند متعال مالک مخلوقات هست مطلقا یعنی کل همه همه مخلوقات همه خداوند متعال درست شد؟ مخلوقات است متعال، که همه مخلوقات هست خب نگاه کنید چی میگیم؟ هوا هوا مخلوق هست یا نیست؟ ماد مخلوق هست یا نیست؟ زندگی ما هیچ چیزی نیست که ما ببینیم بی یا بیش ندیم یا لامس کنیم. بیششی و همیشهان، مگر اینکه مخلوق هست. و خداوند متعال، خالق و مالک همیشهان هست. درسته؟ تاسی قسمت هم خوب دقیق فهمیدیم چی شد؟ آره؟ نه شاید. و ات او اس چی شد؟ ارخان. افعالی، افعالی بله اتحاد الافعالی. ان الله تعالى خالق الخلقه وحيدا ان الله تعالى خالق الخلقة وحيدا سؤال است گفتیم که خداوند مالک همه مخلوقات هست مخلوقات هست یعنی مخلوقات خلق شده دیگه وقتی خلق شده سوال اینه این رو کی خلق کرده؟ خدای یک و یگانه آیا همراه خداوند کسی دیگر همکاری کرده یا نه؟ خداوند نه خداوند آن؟ آن؟ بلکه خداوند متعال به تنهایی آفریدگاره هستیست چی میبینیم؟ برست یاد؟ بلکه خداوند متعال به تنهایی آفریدگاره هستی؟ توحید افعالی یعنی همین کلی کارها و افعال و شده ها توسط خداوند متعال و صورت تنهایی، نه به صورت همکاری یعنی خداوند متعال تنها همه چیز را آفریده آلا باشه ترجمه کنیم این الله تعالی قطعا خداوند متعال خالق خلقت هست وحیدا به طور تنهایی و یگانگی قطعا خداوند متعال خالق و آفردگار خلقت و هستیست و تنهایی خداوند متعال آفردگار هستیست و شکل یا به تنها یه آره استی تنها یه کودش با استی آره کاری یگانگی در کار یا در کار عفوری اصغرترین قاری خان خلق ادی ولی داخلا یاد متان آفرده اخردگار حسيب شنایی خود ازان یاد محقق تمام شد تا اینجا خیلی عالی خب اینجا یک سوال اجل میشه ببینیم دقت میکنید چی میگید ای اینا میبینین میبینینه ها خوبه این به خدا جرکده؟ نه، خرقش به این خدا ما پیشتر گفتیم دقت میکنیم پیشتر گفتیم؟ و دستگاه درست اما خدا به تنهایی که و زمین هم کنم دم و دستگاه بله دقت می‌کنید ما بیشتر گفتیم که خداوند متعال و تنهای همه مخلوقات را آفریده. این خودش مخلوق است یا نیست؟ و شما میگه که بندش زیر کرده. هیچ راهی است کسی میتونه دیگه جوابش رو. انسان عالمی که داره با احساسی که می یعنی در اصل خالق خداوند اما وقتی انسان با وجود مال از رویات خداوند یعنی از علم از مو خداوند به این بخشی از علم می‌تونه کدوم نزیرم خداوند می‌تونه کدوم مقدس‌داریه؟ آها یعنی خالق در اصل خالق ازیم خداوند از چرا که مو شهنیت و در مو خداوند خواند خداوند مقدس نمی‌دهد خوب اگر و توری هست پس شما میتونید میتونین مرغات اینا که برخور درست مونه شما میتونین هم ورشتا درست کنیم؟ نمیتونین نه؟ ما به یک حیوانی که عقل نداره کارم زور انجام داده یعنی چی کار شد پس؟ درست چیزی، حیوان، ما, ما یک نام. اصل خلقت داریم ها یک اصل خلقت داریم یکی این که بندگان هم توانایی اثر بخشی درش باشه یا مخلوقات هم توانایی اثر بخشی درش باشه اینه که بندگان یک کارهای مثلا این چیز میتونه درست کنه این اثر کار بشر هست بخط میکنین ای اثر کار بشر هست چرا؟ برای این که بشر بیتونه یک کار انجام بده تا که فردا در پشکای خداوند متعال اگر کار ما درست کرده بود خب نگه که ما نکردیم درست؟ یک پس خداوند متعال توانایی ایجاد یک چیز رو برای بشر و حتی غیر بشر قرار داده و از طرف دیگه چون خداوند متعال همه توانایی و همه علم و همه خود ایرادهش، اصلش ایراده هست دیگه در وجود مخلوقاتش قرار دادن پس خالق اصلی خود خداوند متعال است. <تصفيق> یعنی اگر این رو خداوند متعال خلق نکرده بود دیگه بشر نمیتونست جا به جا کنه کرده بشر؟ فقط جا به کرده دیگه درست اصل از این مخلوق خدا هست یا نیست درست اگر اصلش نباشد دیگه کسی نمیتونه یک چیزی که نباشد را به وجود بیار درست شد هست, آه هست فقط چطوری هست جمع شده خوب دقت کنیم. بدن آدمی و بدن حیوانات خب گشت و سخان و یا همین خون و آب اگر بگیم بهتر هست بدن آدمی آدمی یا حیوان آب و خون هست خونم بالاخره با آب برمیگرده پس آب هست درسته؟ آره جالباً در یه تحجیزم که به وجود آمده بوده 80 فیصد چند فصد بدن آب هست آب بوجه شدیم؟ آب هست دقیقا دقیقی یادی مخواه می نمیگیم از بین این بدن این گونه چطور یک مایه نام شیر برون میشه که او شیر سفیدی سفیده از اون طرف خونش را سعی کنیم فقط سرخ سرخه دیگه چیزی نیست درسته؟ واقعا عجیبه دیگه خو اگر همه شیر را در بدن آدم یا در بدن حیوان نگاه کنیم هیچ جای بدن شیر نیست نیم دیگه هیچ جای بدن شیر نیست ولی ای چطور طور با وجود نه؟ عزیب است نه؟ خب، ای رو میخواییم برای چه بگیم که در صحب ما خوب چش و جا بگیره؟ اصل بونبایهش به اراده خداوند متعال هست و همینطور آهسته آهسته کم کم جمع میشه جمع میشه تا اینکه که نهایتش وقتی به قسمت پستان آدمی و حیوانی مرسه اون شیرها به وجود میاد شد؟ و ایلا مثلا غیر از همون ناحیه خاص بدن آدمی و غیر آدمی را اگر نگاه کنیم هیچ جای شیر پیدا نمیکنیم می‌تونید چون خب طبعا یا اگر ما شما تا حیوان ذبح نکردیم حیوان ذبح شده را خود خب دیدیم دیگه هیچ جای بدنش به نام شیر نیست هست حتی اون پستانی که آدمی از پستان مادر شیر میخورد و حیوانات در همونجا هم شیر نیست مگر زمانی خاصی که جمع میشه همونجا می جای خاصی بنا جایشه هست ولی اگر بگیم یعنی شیر نیست واقعا درسته؟ نیست پیدا نمیشه اما حیوانات <تصفح> آره آره حیواناتی که نمیدونم دیدین ندیدین اونجا در وقتی می باکره شیر نیست واقعا ولی با وجود اینه دیگه که من چه نمیدونم درست خب پس میخوایم اینو بگیم این چاکلیت ها یا هرچی که هست آدمی فقط جابجا کرده اصل بونبایش توصیب خداوند متعال و به اراده خداوند متعال به وجود آمده است. درست هم؟ اینجوره خب حالا ادامه بدیم در الحکمی این الله تعالی حاکم مطلق خداوند متعال تنها حاکم هستیست درست خداوند متعال تنها حاکم هستی هست که هیچ کس را توانایی حکومت باست. و با خداوند متعال نیست. درست شد؟ اداعراد الله آیا رو بخوانین سور مبارک یاسن اداعراد الله همون نه؟ توحید حکومتی، حاکمیتی، حاکم بودن تنها خاکمی هستی حاکمی؟ هستی سوره مبارکه یاسن سور جوز بیس بود بیس تو چند و سه؟ خب دقت کنین سوره مبارکه یاسین این نما این نما امره اذا اراده شيئا اي يقول له كن له ببین شن او این است ترجمه اینجا میشه اینطوری شن او این است که چون پدید آمدن چیزی را اراده کند فقط فقط به آن میگوید باش پس بیدرنگ موجود می شود خب همه قسمت چی را دقیق کنی؟ ادا، اراده، شیعه وقتی که اراده فرماید چیزی را؟ کولا فقط می فرمایید فقط می چه؟ چی؟ ایقوله برایش می چه؟ کن، کن یعنی باش همین که خدا فرمود کن، فایکن پس فوری می باشد دیگه خلاص فوری, فوری. درسته این آیا بیانگر توحید افعالی میتونه باشه تو بیانگر توحید حکومتی هم میتونه باشه چطور چون که وقت خداوند متعال یک چیز را بنا کرد که نباشد فقط میگه نباش خلاص دیگه نیست درسته اگر که باشه فقط میگه باش دیگه تمام. درست؟ همین پس تنها حاکیم مطلق هستی کی هست؟ خدا متعال خب بعدی التوحید العبادی یعنی توحید عبادی و پرستیشی بندگی عبادتی سه شب ان الله تَعَالَ معبود وحده خداوند متعال تنها معبود هست که هیچ معبود دیگه در کنار خداوند متعال لایق عبادت نیست <تصفح> تنها, تنها معبود هست معبود خب دقت کنید چه میگه معبود بعدا بازمار شما میخوانیم انشاءالله معبود را میگن مفعول هست مفعولی یعنی چه؟ مبوده. یعنی شوده مفعول یعنی شوده معبود یعنی پرستش شوده خداوند متقال پرستش کنندن نیست بلکه پرستش شده هست دقت میکنید نحن قابلونم و الله ما پرستش کنیم هستیم و خداوند متعال پرستش شده هست فا میده؟ دو به وجه غیره بوجه من الوجود ولا غیره بوجه من الوجود بله خداوند متعال تنها معبود هست نه غیر خداوند متعال به هیچ صورت از صورت ها وجه صورت گونه شکل. غیر از خداوند خلاصه‌ای که ماجرا که الله هیچ کس بجز خدای متعال لایق عبادت نیست و هیچ کس که آره هیچ گونه‌ای از عبادت و جز خداوند متعال برای کسی دیگه نیست به هیچ گونه دقیق میکنه ممکن ممکنه بس یا بیگن که با این چیز رو می پرستیم و از راه این به خدا, خدا رو می پرستیم نیست پرستش فقط مربوط خداوند متعال غیر خداوند مطال به هیچ صورت لایق پرستش نیست. به هیچ صورت. آره، نمید که آره. آره. آه، نه عزیز بله. نه، این شرک نیست، پرستش نیست. درسته؟ پراستیشنی فہمیدیم کله یانہ سوال نه یک دفعه یک دفعه هر که سوال دوشه مسال فہمیدین اره؟ خوب اگر نفهمیدین بشینین صد بوله چی شه؟ چی خداوند متعال خدای و معبود است و نه غیر خداوند متعال و هیچ صورتی از صورت ها غیر خداوند متعال لایق پرستش نیست درست تمام تا اینجا ولا غیره یعنی نه غیر خداوند به وجههم و آره هیچ صورتی من الوجوه از صورت ها وجه صورت مین از وجوه صورت ها به هیچ وجه از وجوه بنی صورت يا صورت یک دین با نه پسراها رو اما خود آه متوجه می تمام شد فاهمیم کسی سوال نداریم و الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین